أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين وخاتم النبيين ابي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مغدمه الفداء ولعنت الله على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولاية أمير المؤمنين عليه السلام و الاعمت المعصومین علیهم مسلام ندیه پیشگاه مولانا و مقتدانا صاحب الاسر و زمان و جهت خوشنودی حضرتشون و تعجیل فرجشون سلباتی تقدیم کنیم اللهم صل علی محمد و آن محمد و عجل فرجان بر طبق عرائزی که شبهای گذشته تقدیم شد امام شناسی منحصر به صفات متداول در کتب اعتقادی و کلامی نیست و این کتب و علماء علم کلام اینا به بخشی از این صفات پرداختن که به ضرورت مناظره و تفعیم و تفهمی که نسبت به سایر مدعیان امامت در عالم هست، مدعیان خلافت و تعریف کنندگان جایگاه امام به عنوان یک رهبر جامعه نه بیشتر. کاملا زمینی، یعنی در نگاه غیر غیرشیعی، امامت یه امر کاملا زمینیه. درسته که این انسان زمینی قرار حافظ شرع که امر آسمانی باشه، ولی یک زمینیه که حافظ شرعه. مثلا حالا اگر چنین تصوری رو در مورد امامت، کسی ادعا بکنه وگرنه همونی که آقای ممرزا علیه فرمودند مطلب همون از تو بحث که امامت یه امری فراتر از دسترس عقول ما و فهم ما و کاملا آسمانی نه که بشر نیستند بشرند ولی بشر آسمانی فرشی عرشی تو زمینند مثل ما هستند میخورند میآشامند هنر خدا همینه که در یک موجود کاملا شبیه ما عرشی بودن رو محقق کرده وگرنه در جنس ملائکه خدا بیاد یک صفات ما برای قرار بده میگه خب ملائکه متفاوتن مثل ما ماده نیستن، ماده کسیف اصطلاحا متفاوتن از جسم لطیف بودن و قابلیت هایی که دارند برای که مثل ما جا نمیخوان مثل ما فضا اشخال نمیکنن مثل ما زخامت ندارن لطافتشون مخصوص خودشون یا اجنه حتی بشری مثل ما بری بشر آسمانی و بشر آسمانی رو بشریت شو بشر میتونه بفهمه ولی آسمانی بودنشون نمیتونه بفهمه و اصلا همچنین چیزی در تعریف امامت از جایگاه و از منظر غیر شیعی وجود نداره لذا میان سراغ امام معصوم انتخاب با رأی مردم هرچی بود امامت کی با شورا بوده حتی اگه با شورا هم بوده نقضم کردن امیرمانی نرستم با شورا هم می بود مگه چجوری با شورا شما انتخاب کردین و حال اینکه که مشیرونه قاییه بودم قایب بودن ما ها نبودیم که چه شورایی هی بوده اینه حتی بر مبنای شورا هم حضرت اسلالشون رد کردن که اگه شورا هم بوده فن کنته به شورا ملکت اموره هم اگه میگی با شورا با رعی بقیه نبودن موشی رونقایه بود چجوری شما با رأیی که بخشی از رأی نبودن چجوری شما انتخاب کردیم؟ حتی گفتم به مبنام خودتون هم باطله ولی اصلا امامت امر شورایی نیست امامی که شیعه بهاش داره فخر میکنه و امامتی که شیعه ادعا میکنه بعد از رسول خدا عمریه کاملا آسمانی ولی در یک انسان زمین. این امر آسمانی چطور خود پیامبر اینجوری وحی میاد در یک موجود زمینی میشه بشر رو مثل کم یوها قل انما انا بشر مثل چون انتظار جامعه زمان پیامبر این بود که حتی انبیاء دیگه میگفت این که مثل خودمونه. قرآن چند تا آیه به این مضمون داریم که اینا میگفتون که مثل خودمونه که ما نمیپذیریم حرفشو این شبیه خودمونه بسه معجزه همینجا مدسه همی شد که خب ببینید چه کار میکنه ارساشو میدازه اشتاها میشه مثل خودتونه شما خیلی زور زدین ساهران هرفه ای رو جمع کردین فران این کارو کرد دیگه همه رو گفت بعد رو گفت چه بهتون میدم چقدر شما مقرب میشین پیش من، تشویقشون هم کرد، بیاید دیگه حرفه ای به تمام هنرتون رو به کار بسنید. تو اول شروع میکنین گفت نه، شما شروع کنیم. اینام ریسمانهاشون انداختند و با سحرشون کاری کردند که این ریسمانها مثل مارهایی به حرکت در اومدند. حیتون تساها به طبیر قرآن، حیتون که حرکت میکنه. و خیلی هنر به خرج دادن یه مرتبه تا اصار رو ایشون انداختن و اژدها شد و همه اینا رو بلعید خود سحره به سجده افتادن چون خودشون حرفه ای این کار بودن تا جنس کار رو دیدند گفتنی از سنخ ما نیست این کار آسمونیه این کار زمینی نیست گفته ما خودمون تو این فن نیم ما تو فن سهر و جدو کار کردیم و خیلی هنر کردیم مجموعه ما تونستیم یه همچه صحنه ایجاد کنیم که حبال رو، حبل ها رو ریسمان ها رو به تصور مارانی که دارن حرکت میکنند با سهرمون به این نتیجه برسونیم ولی دیدن نه اصا انداخته اجده ها شده اینا رو ایده فهمیدن امر کامران ماوراییه. رضا هرچی هم گفت در حسن لبن نکنم به جزو نقل بیچارت میکنم به سلیب میکشم شما رو. آویزونتون میکنم به شاخهای درخت ها. گفتن ما دیگه اسلام نه ما ایمان آوردیم به حضرت موسا. چون جنس کار رو دیدن متفاوته. یعنی معجزه رو فهمیدن. معجزه کار آسمانیه. ولی یه بشر زمینی انجام میده. خدا پشت سحن است در امامت هم همین جوریه امامت رو یک تعریف نازلی براش گذاشتن تا قد و قباره خلیفه هاشون با این تعریف هماهنگ بشه خلیفه های بی سر و پایی که اصلا تو این حد ها نبودن اینا با این تعریف بتونن داخل در دایره امامت بشن بعد که امام رضا علیه السلام و دیگر اهل بیت نور جایگاه امامت رو معرفی کردن معلوم شد که اصلا اینا مال این حرفا نیستند اصلا به ریخت و قیافه شون نمیخوره بحث امامت خلیفت الله خلیفت رسول الله این چیزایی که همیشه یکی از مظلومیات های احریف سرقت اوصافشون بوده اوش، اوصاف فاروق صدیق متوکل از لقب های اهل بیت اصلا متوکل لقب امام حادی علیه السلام این لقب ها سرقت شد و متوکل عباسی این لقب رو چنان به فضاحت کشند چنان منفی کرد این لقب رو که امام هادی علیه السلام می‌دونیدم کشور القامه داره که با اینکه لقبشون بود دوست نداشتن به این لقب یاد بشن این این خیلی باست رو چنان به خرج دادن این القاب مصادره کردن که لقب حضرت چطور ما الان خود ما همینجوری هستیم که دوست نداریم به امیرالمؤمنین بگیم فاروق چون این فاروق رو بردن رو اون دومی استدلال کردن با اینکه که امیر المومنین فاروقن. فاروق بین حق و باطل جدا کننده فرق زارنده بین حق و باطل یا صدیق رو داشتن لوس کردن با بکار بردن در قاسب اول اسم اون رو گذاشتن صدیق صدیق اکبر امیر المومنین صدیقه کبرا حضرت زهره و صلی اللہ علیه ما این خب الغاب مقدسه شد. حال بگذنم، امامت کاملا آسمانیه، آسمانی بودن در واقع بخشی از مفهوم امامته با همه مصادقی که داره. خب این رو کی میفهمه؟ مگه با عقل میشه فهمید، این مصادیق رو خود اون محسوم باید بیان کنه. لذا باید سفره فضائل زانو بزنید. باید سر سفره سیره اهل بیت زانو بزنیم. به خاطر بحث مطالعاتی نه به خاطر امام شناسی. امام شناسی بدون مطالعه سیره اخلاقی اهل بیت ناقصه. حتی سیره اخلاقیشون جذب مشتری میکنه. چقدم لطافت های رفتاری دارن تو بحث اخلاق که همونو خودش شیعه می سازه همون رفتارها که نقل بشه خب اینا صفات الامامه صفات الامامه که اینجور رحمت می باره اینجور لطافت روحی داره اینجور فضائل در وجودش متجلی میشه. این فضائل نباید بحثش جدا بشه به عنوان یک کاری مثلا جداگانه فضائل خانی مثلا داریم مثل این متائن خانی داریم دوتاش لازمه ولی فضائل اهل بید جامعه کبیره کتب فضائل اینا خودش بخشی از مبحث امام شناسی یعنی زیر مجموعه امام شناسی باید مطرح بشه تمام این فضائل رو باید بیاریم حالا ولو با کوتاه یکی از فضائل ما که اهل بید می فرماند ما واسطه ای هستیم که خدا به خاطر ما رحمت میباره خدا به خاطر ما فیوزاتشو میفرسته و لله الاسماع الحسنا فتعه به خدا اسماع حسنایی داره خدا رو به واسطه اون اسماع حسنه بخانید خب فهم نحن الاسماع الحسنه یعنی اگر میخوایی زدجه بزنید در خونه خدا ما رو واسطه کن. فدعوه و بها وقتی خدا رو میخوانید به این اسماع بخوانید. این اسماع رو بیارید وسط. این اسماع رو واسطه قرار بدین. به تو فعل این اسماع یرحم کنید به تو فعل این اسماع مبارکه و مقدسه شما با خدا مرتبط میشید خب این یک جایگاهه دیگه. این یک بحث امامشناسیه که اهل بیت واسطه هستند در نزول رحمت. حتی از بعضی روایت استفاده میشه مؤمنین. اون روایت خلقتل ارزا رسبعتن به هم ترزقون به هم در خصال هست منو به دیگه هست. رسبعتن زمین برای هفت نفر آفریده شده رزقشون به توفیل اوناست باران اگه میباره به توفیل اوناست نعمت ها به توفیل اوناست بعد اینا کیان؟ اینا کسانی هستن که در نماز حضرت زهرا سلام الله علیه در اون شب شرکت داشتند. شده که حضرت داره و انا امام هم. خودشون هم میخوان تو لیست اضافه کنم اینا کسانی که تو اون نماز بودن و انا امام هم منم امام ام ام اون نماز بودم اون نماز لیلت و دفن حضرت زهرا سلام اولاده در مورد اینا هم حتی داریم که در مورد مؤمنین دیگه هم جدوانی داریم که خدا بارانش رو به خاطر شما ها میفرسته شما مؤمنین که و ما قدر الله حق قدره در اون روایتی که حضرت میفرم خدا رو نمیشه توصیف کرد بادینایا تلاوت میکنه و ما قدر الله حق قدره به زبان ساده کسی نمیتونه خدا رو قدر اندازه مشخص کنه و تعریف کنه خدا قابل توصیف نیست پیامبر قابل توصیف نیستند ما علی بیت قابل توصیف نیستیم خب اینا هیچ تعجبی نداره همشه اینا همین جزء معرفت الامام هست که امام توصیف ناپذیره اونقدر متعالیه که هرچی هم ما بگیم هزار مرتبه شوریم دهان به مشک و گلاب هنوز نامتو بردن کمال بیعدبیس اینجوری هنه اونا متعالیه اونقدر متعالیه که ما اصلا نمیتونیم درباره مقاماتشون صحبت کنیم مثل ندارن نظیر ندارن خودشون خود انوار مقدسه مثل هم هستن و نسو به سایر خلاق دارن می سنجن. که مثلی ندارن. نزیری ندارند. خب این خودش یه؟ فضیلت این امام بی مثل و نزیره. امام تافته جدا وافتهه آفرینشه. تمام این فضائل، تمام این اوصاف و منقبتهایی که در قالب سیره، در قالب فضیلت، در قالب توصیف، در قالب علامات الامام، در قالب اختصاصات الامام، تمام اینها به هر انوانی که بیان میشه، میشه معرفت الامام. حتی اگه به عنوان معرفت الامام هم مطلح نشه، همینجور به عنوان یک فضیلت مطرح بشه که نمونهاش هم اشاره کردیم. تو بحث امام زمان شناسی هم الان یه اشاره به نظرم کردیم لولل حجه لساخت الارض و اهلها اینی که اگر حجت خدا نباشه زمین به هم میریزه با اهلش از بین میره این خیلی جایگاه مهمیه یعنی امام رمز بقا و حیات عالمه. امام معصوم لنگر بقاس جوریه که اگر نباشه خب این خیلی جایگاه مهمیه کدوم اندیشه زمینی اینو می‌تونه بفهمه هیچ کس جز با معرفیه و به این نقطه نمی‌رسه خودش باید خودشو معرفی کنه امام معصوم ولیزا این کارو رو میکردن انه که اهل میگفتند، میگفتن نحن و که میگفتن برای معرفی بود برای اصحار فخر اینها نبود نه میخواستن خودشون رو معرفی کنن ابته تفاخر دارن در جایی که مفاخره هست مفاخره میکنن به آبا و اجدادشون هموهای بزرگوارشون به مادرشون حضرت زهرا مفاخره ها جا خودش اما خیلی جاها نح و نحن میکنیم تو می خودشون رو معرفی کنند. زیارت جامعه کبیره یکی از بهترین تصایقشه. وقتی تک تک این عبارت ها رو بررسی می حالا یک نمونه شما شدا امشب برج کنیم که خیلی تاثیر گذاره بدم روش فکر کنه و تامینن، فی محبت الله این امام شناسیه که امام در حب الله تام متمام پس اولا یه حب هست حب الله که در امام معصوم هم هست و امام معصوم در وصف حب الله و تامینه یعنی تو قلس هیچ کم در حب الله ندارند تام و تمام. خب کسی که عاشق کسیه اونم به این شکل اصلا هیچ کاری بر خلاف رضایی او انجام نمیده یه جوری اسمت رو هم میشه فلجمله تقضیر کرد از همین طریق که کسی که علاقه داره به یه شخصیتی که علاقهش هم تا متمامه صد درصده هیچ وقت مخالف رضای محبوبش قدمی بر نمی داره. وقت محبوبش یه آدم فاسده یه آدم ظالمه یه آدم جانیه اون بحثش جداست که مم. کسی اونجا هم چه ادعایی نمیکنه نه در محبوبی که ارزش محبوبیت داره و تامینه فی محبت الله اهل بید تامینه فی محبت الله هستن تو حب خب خدا یک سرسوزن کم ندارن خب محبت تاعت میاره یکی از لوازم محبت طاعت یعنی کسی که تامین فی حب الله است میشه متیعن تامن لله ایال عبدال صالح المتیع لله هست ولی امیر المانی ولی حسن حسن خب تامین فی حب الله در حب الله در قله تمام و کمالش هستن هیچی کم ندارن در حب الله خب وقتی کسی در محبت روش کنه اصلا نمیتونه به چیزی جز رضای محبوبش فکر کن به چیزی غیر رضای محبوبش نمیتونه فکر کنه. و اهلویت همی جوره حتی فکر گناه هم نمیکنن. جز فکر تاعت در خاطر مبارکشون چیزی خطور نمیکنه. یکی از زوایای تبیین اسمت اونا مربطه حالا در بخشی از این مفهوم بحث محبته یه بخش میگیم اسمت به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه که مثلا میدونند علم دارند که معصیت چقدر باطن انسان رو آلوده میکنه علم دارند شطور از آن تنظیر که مثال میزن ما علم داریم به نجاست یک شی، هیچ وقت رقبت به خوردنشون نداریم دیگه مثال معروف شو نمیخوام بگم مسترزنین که هیچ کسی فکر نمیکنه چنین نجاستی روی به عنه قضا بخوره چرا؟ چون علم به قذارت در نهایت دیگه. یک سرزوزن در قضارت این شی تردید نداره لذا اصلا خیالش هم به ذهن کسی خطور نمی‌کنه از باب تنظیر بحث اسمت که چطور میشه یک نفر حتی خیال معصیت هم نکنه خب بریم به این نفر بگن که تابوال شده به فکر باشی که برای تعامل از نجاسات اجلکم و استفاد استفاده کنی بگید اصلا تاوال به ذهن هم خطور نکرده بود چطور اینجا قابل تبینه؟ معصیت هم نسبت به صاحب مقدس معصومان همین جوریه اصلا به ذهنشون خطور نمیکنه. کنه به از قذارت و آلودگی و نجاست این اعمال متلعن که اتا فکرش هم نمی میگه ما مشابهشو داریم دیگه اگه کسی به نجاست گناه برسه آنچنان که معصوم رسیده همین حالت پیدا میکنه. ولی خوب. خب که کسی که برسه به این جایگاه پس جایگاه واسطه بودن برای فیوزات خدا بنا این اطل اصمار باران توفعل ما میاد میوه ها هم به سمر می نشینند میوه ها می رسند به ناس یعنی خیال نکنید ما فقط تو دارالحکومه و دارالعماره باید بنشینیم و فقط مثلا قضاوت کنیم و انگام جهاد دست جنگ بدیم خودمونم سپا جمع کنیم خودمونم بیام تو میدان جنگ فرماندهی این جهاد دینی رو اعتدال بشیم نه ما تو تمام صحنه ها حضور داریم حتی در صحنه رسیدن میوه ها حتی در صحنه ریزش باران رحمت الهی یعنی بدون همه اینا ما دست داریم توش. ما تأثیر داریم توش. این کجا نگاه زمینی امامته؟ نگاه زمینی امامت نهایتش میگه یک رهبر فهمیده با اقتدار. این ضرورت داره برای جامعه بعد از پیانبن. هم فهمیده باشه، علم دین داشته باشه. هم هوا و هوس نداشته باشه. هم به فکر جامعه باشه، دلسوز باشه و هزار تا هم اما هم همش در هیته امور دنیایی. بعد قسیم الجنت و النار هم باشه. ما اینا رو نمیفهمیم. این خود امیرالمومنین بعد بفرمان این روایت باید بفرماید که مهره حضرت زهرابه اشتا جهنمه. سلام الله علیه ها تدخل اعداه النار اولین جمعه است و تدخل اولیه ها الجنه همه این مفاهیم در وجود نازنین حضرت بقیه الله ازم باید باشید به عنوان فضائل امام به صورت عام تا بیدیم سراغ فضائل امام زمان ازم به صورت خاص که نموناهاشم عرش کردیم یم لعباد عرض و عدلا اینی اهل لأهل العرض اضافه کنیم کم کم جمع کنیم اینی لأمانون لأهل العرض کما ان النجوم امانون لأهل سما نه اونو میفهمیم نه اینو اگه نمیگفتن مثلا متوجه نیم امام امام همچی نقشی داره اولاً که نجوم ستاره امانه برای اهل آسمان هستند اینو ما خودمون متوجه نمی‌شدیم اگر حضرت نمی‌فهموند بعد میفهمم همونطور که ستاره‌ها امانه اهل سما هستند ما هم امان زمینیان هستیم نیل امانه اهل امان بودن میشه یک صفت امام معصوم امان و نامه میده روز قیامت هم نامه ما به دست امامان ماست. انشالله که هممون مشمول نگاه عطوفانه اهل بیت نور علیه مسلام باشیم در دنیا و آخرت به بلکت صلوات بر محمد آل محمد. در لب آبمون از داق لبت می می ریم هر دم از قصه جانسوس تو آتش گیرم مادرم داده به من درس وفاداری را شیرین تا آمیخته شد با شیرم کربلا کهوه استم منم در احرام شد در این کهوه اشاق دوتا تقصیرم دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد نصیب خودشم نشد آب رو ریخ روی آب یا نفسم بعد سینهونی دست من خورد به آبی که نصیب تا نشد چشم من داد از آن آب روان تصویر باید این دیده و این دست هم قربانی تا که تکمیل شود حج من و تقصیرم جسدم را به سوی خیمه از مبری که خجالت زد آذان تشن لب بیشیرم و من آب را در خیمه ها از بهر اسغر میبرم. یک دست من گردد جدا با دست دیگر می بردم. دو دوتا دست انداختن جز لحظه که مشک به دندان گرفته بود در عمر خیش خنده دندان نما نکرد دندان کمک کند چو زکار و فتا دندان من همین گره بسته و نکرد چی شد مگه مشکو به دندان هگه بود درست دست افتاده بود ولی مشک آب رو داشت می بود دکار دشت کربلا ابل فرد دستش شده از جدا عبال فض عبال, فز عبال, فز عبال فز پس چه شو چرا پس مشک آب به خیمه ها نرسید؟ عمود آهان اگر بر سرش نمی آمد. ز خیمه علتش از نمی آمد. دری قدرت که افتاد بر زمین عباس. صدای فاطمه آمد. که آفرین عبا چه کنه عبی عبدالله چجوری خبر فرق عمود آهن و فرق اول فضل و به خیمه میگن سریانه نتونست خبر رو به برگ رف امود خیمه یا بر یعنی این خیمه صاحب نداشت او خیمه ای حمی بنات محمدن برچی کمر امام حسین بشگن. برای این قلت حیلتی بیچاره شدم عبال شاعر این جعتم میگه فای عدو به خیمه ها قامت حجت خدا تا شده ابل فقض عربا میان تو حرم ابل فقض انت اخوذی یا نه انت اخوذی یا نه همه می ابلفض برادر زینب کبرا چه جای گفتن داره چی میخوان بگن با این کلمه میخوان بگن ابلفض زینب برادری مثل تو داشته و چادر اسیری به سر کرده عرض آخره زينب برادري مثل تداشد بو دخلت زينب أخد الحسين على ابن زيايا وعليا أرذل ثيابها فحف بها إماؤها زینب برادری مثل تو داشته بود تو مجلس ابن زیاد رفته گوشه بین کنیزا خودشو مخفی کرده زینب وغان سخدایست بی مهرم سفر کردن حسین بر روخ محرم به نوک نی نظر کردن حسین يا كاشف الكب عن وجه الحسين اكشف قروبنا به حق الحسين فرج عن مولانا صاحب الزمان فرجا عاجلا قريبا كلمه البسر أموه بغرد وفرج عن جميع شيعته ومحبيه حيهم وميتهم سيما المنذورين منهم بجاه محمد وآله وبالفاطه قبلها الصلاه <تصفيق>